الحمد لله رب العالمين وصلا الله علی سیدنا رسول الله و آله قیلی و و در با و مطابقی را بزرگان نه شده از صحبت هایی که در اینجا تحالا شده و که به مطلب که معلوم و اصطاعت خلاصه ایشان هم بود بینیم که نسبت بین مفهوم و عام نسبت حکومت باشیم و مفهوم مقدم و اگر حکومت نباشیم و ملاحظه نسبت می یا مخصوص مطلقه باز هم خب محکوم مقدم می شه اگر یا مخصوص منوج اگر مخصوص منووج هم بود اگر نقطه بود سهمون ج آجو کلش تی مفهوم مقدم برای فز میکننده رو دووضداد این خلاصه نظر مبارک ایشان و اون زاویه اساسی بحث ایشان این از که این فارز سرت بین مفهوم و عام نیست بین منطوق هم هست از این زاویه وارد هست هست مطال به ایشان خوب خوبه هم و به هر حال اون مثل که چی اون منظور چی می اندرسن؟ بالعکس به منظور استبدال کردن مدعا رو عین چنین قرار دادن دلیل و مصادره خط استلاشه دادن مصادره به مکتوب اشراق یعنی این که ایشون مثلا آیه نبع و مفهوم رو حاکم و تعلیم می دونن خب خودش اولی کلام خب میگید منظورش در اشکالاتی که با یه کردن می تواند دو سار اشکالش که یه مهمه یکی همین که مفهوم منعبت نمیشه به خاطر عموم یعنی این که ایشان گرفتن حکومت این خودش اول کلام یعنی این یه تحلیلی بشه تا این مطلب حل بشه نه که این روشون مفهومن بگیرن بس تردیگه که اصلا عموم علت بر مفهوم مقدمه نه که بر مفهوم مقدمه اصلا با حالا ایشان در الله و شبه که انما مفروعن یعنی که محکوم هست حالا که محکوم هست نصبتش با امون نصبت حکومته همچنسی با قرمان بیره خب مرمون شهر در رسائل هم خوندیم ملازه یکی از قلیطه این اشکالات رو این میدونن که با وجودون علت اصلا محکوم منقق نمیشه اصلا دیازه محکوم سازگار است مفهوم اولی بیشتر حکومت که میشه، هم ولی باید مفهوم ثابت بشه و بعد مسئله حکومت. پس بعد ایشان در حقیقت یک نکته فنی زیگوکان را نپسندارند، بلکه اینکه اینجا اصولاً مفهوم داره، این اقدام مفهوم میشه، مفهوم در اینجا هست، بعد دایانه نسبت باد بفهم. در اون مسئله امکان مخصوص مطلق و مخصوص ملکش، اونا نکته اینه، جریان مطلق. اول واده اثبات مفهوم بشه، ثابت بشه مفهوم هست. بعد باید اثبات کنه که اون رزومات لحیل یا رزومه لحیل. و اما اینکه چرا مفهوم هست و چرا نیست، این باز باز برگرده بر هم مقدماتی که سابقا آن کردیم حالا در خیلی بحث هم بعد از این روکشتر میشه. بر میکه چرا دیگه این افاده مفهوم که جوییه، مفهوم رو جویی میگیری؟ از کدوم در کلمات مرحوم افشار و ایشون تعریضا داره یه شخص سوم میاد نداره یا به wzgl یا مقدمات یک متن مضمون به شخص سوم نمیان من خودیام از فرقه خدمت آیین که مجنوع احتمالاتی که در با مفهوم هست چیش احتمال هست دو ممکنه که شما فکر بدم بیشتر بلا بکنه یک احتمالش اینه که به wzgl باشه خب این اگه به wzgl باشه. باشه نتیجه ش اینه که ورا در یعنی لفظ این یا اگر در زبان فارسی یا در زبان های دیگر این وز شده اصاساً برای دو تا محنا یعنی این لفظ تا ماشین بیم. مثلا مثلاً اگر اگر بفتی فرمی دو محنا نخواد صاف بکنن ایکی اون که در کلام رکس میشه ایکی دیگر فرمز دنبال اگر رید آمد او رو اکرام بکن این اصلا تا گفت اگر انجا کن فارسا تا گفت این میف این معنی وزوی. و از کلیم اونی که از کلمات مصب کلمات اصولی اینا در میاد همین نکته نکته واژه که شریعت از از اذن وجوب میکنه نمیکنه این که بحث مفاهیم رو اورده نکته نکته واژه این یک احتمال احتمال دیگه این که به مقدمات حکمت باشه که توضیحش بده احتمال دومی که اصلا جعل این اختیاری میکنه قانون حالا میخواد مقدمات حکمت باشه نباشه در بیر جعب این اختزا نیست هر جا جعبی بود حالا پدر باشه پدر باشه پدر باشه،, باشه توی مهمان نامان این تا و اگر توی قوانیم و توی اعتبارات اینه احتمال سوم این که نه جعب باشه و مقدمات حکمت به معنای این که هیچ قرینه نباشه به همین مقدمات به همین قرینه مقدمه احتمال چارو مقدمات حکمت تماما در معام بیان باشه و خصوصات دیگه این ها توضعاتشون عرصه این از مقدمه احتمال تنجم این این دلالت به دلالت فهره. اصلا به لحظ برنه میگرده چی که مطمئن بردن های احتمال شیشون این که اصل عملی چی میکنه پس وجود این در کلمات علماء ما نامده اشتراله نشه این فیلم مشاهیر اصولین ما نامده ما تو کلمات اهل سنت آمده این تمسا که به عملی در اونجا آمده پس این شیشتا احتماله اگر بناس کاری بشه اول باز این بخش مفهوم روشن بشه بعد وارد این نتیجه دیگه ها بشید که نصداد و مبصد مطلق یامد بشه و اینی که مثلا آزیا یا در کفایت که خوندیم به بارتشون شدن که اینا در یک کلام باشن دو کلام باشن مستقل باشن مستقل نباشن اون نقطش اینه یعنی اونها نظر به مقدمات قدمات حکمت دارن که توضیحاتش سارا هم داده شد و یه مقدار دیگه باید برای اینکه که تجابلی در بشه، باشه ما کلمات مرماینانی رو به نفره اشاره از از محاضرات مرگومنسا نرکوم بعد در این زرافت هایی داره خود مرگوم ناینی قدر صلاح نصر رو کمالا برای بیان اون زرافت ها و آشنایی با مطالب ایشان مثلا خود مطلب ایشان رو بخونیم خوب ایشون بعد اثبات بودن ایشون میگه آیه نبع بر زیدش مقدم حاکمه اول محکوم درسته شیخ هنزه نزید که نمیشه این چه حکومتی؟ اول سابس بشه مفهوم... اون نکته فنی رو پس بادشون اول دیان برای اصفاث مفهوم. اگر مفهوم آمد اون وقت بحث حکومت یا بحث نسبت دیگه از اصل ثابت نیست چه پایی داره در این کتاب های چاپ جهید فوالدالعصول که جرده یک و دار پشتش شماره زده هست. این دوستان مطلب لطیف هم داره بعضی هم معتقلن که در بزرگان از همهش لطیف سه اون نکات رو علامات طلب و عمومی و همه میگن اون نقاطش لطیف در سرکه 555 و 55 ایشان متعرض مفهوم شده. تا آرز آم به تخصیص آم به مفهوم معافظ و مخالق ما این مطلب رو از کتاب های هم خوندیم ایشون کن پرامدن چون در ایده از خطب ما مثل کفایه و دیگر اووردن که تخصیص آن به مفهوم محافظ اتفاقی است محل در مفهوم مخالفه آن بروزی فهمدن نه این اتفاقی نیست یه عبارتی از عزودی اووردن که این اتفاقی نیست راست اتفاقی نیست اما خب مشهور قاردن راسته محوم آی یک معداری را که به این مطلب به مفهوم محافظ بیشتر توضیح دادن من بیشتر اینوز ایشان رو به این جهت میخوان. ایشان از این مفهوم که گذشت تعریف مفهوم موافق گذشت ایشان نوشتن که مفهوم موافق موافق المنطوق فلك یک من الاجاب و سرد. اگر در ایجاب و سرد مثل منطوق باشه روشن مفهوم موافقه. مثل لا طلب ما او فعل لا طلب موافق لا طلب. اگر گفت اکثر خدام العلماء به تعبیر ایشان خادم های علماء ها رو اکرام بکن خب می به طریق اولا خود علما. خود خادم اکرامش واجب باشه خداعاله به طریق اولای مثاله ایش که در قلب و ایجا با هم موافق هم به اصطلاح این از این ونه هنی به موافق این همین تعریف مشهوره که قولی تعالی و که قولی که اکیم خود دامال علماء بعد ایشان بله فهمنده این دلالت به یک مقدمه عقلیه طبیعی است یعنی وقتی که افتخفتن هر امواجهی ایزا مثل زر و اینها به تنبیق اولا حرام خیلی خوب بسیار و و بعد ایشان این نکته رو که می‌خوام بگم این نکته خوبی است یعنی این در مباحث تحلیل زبانی یا زبان شناسی به اصطلاح نم یا هرمانی. خیلی محصره مرمونه این مخالفان به این دو مثال یک فرد دیگر میتونی بذاریم لا تقال ما افه ما مثال افرم خدا اون فرد ایشون اینجوی میدارن که اگر گفت لا تقال لحما افه اینه خب نکن دیگه کتکشون نزد ایشون این که ازیرشون نکن و کتکشون نزد این فقط به حکم احلی نیست این اینطور نیست که دلالت دلات عقلی باشه هست نقطه هست اما این با یک مدلول التضامی لحظیه یعنی ما، اصلا خود کلام دارای انعقاد یک ظهور خاصیست لا تقل لهم اف. خود کلام این ظهور رو داره اصلا زهور کرام که از ازشون نکن. این لا تقل رو به فهم عرفی گفتن عفت نمیفهمند. یعنی وقتی آمد گفت کمترین درجه ایزا کمترین درجه ایزا که متصور که گفتن عفت باشه این نصال پداماده حرامه این عرف ازش میفهمه یعنی ایزا حرامه دیگه من کنالشون توضیح ندم من که رانه کردم ما در فهم کلمات و در ویان مدلول مقام دلالت از مدلول الفاظ اون مقدار رو که به کتب لغت مراجعه میکنیم و میفهمیم اون نسبت به مدلول کلام اون لغت برای مفردات بوده اما برای مدلول کلام اون مقداری که ما از کتب لغت مراجعه میکنیم یک دهان مدلول کلام اون که کتب لغت و بعد آمده با اون که مدلول جدی و مراد جدی نصفه شدودی یک درمونه بیشترین دست که ما میفهمیم با ارتکازات و قرارن خارجی و زمینه های خارجی و فرهنگ خارجی و حتی زربال مسئله ها و اساطیر و شما الان از لفظ رستن معنی میفهمیم همون در دنیا عربی معنی ها چرا؟, چرا حالا یا واقعیت یا تاریخ بوده یا اصوله بوده یک جریان سابقه تاریخی هست اون میاد بر ذهن فهم ارفی ترکی تأثیر میکنه و سوساز درستان داره در فرنگ شیعه از نام حضرت زرلایی چیز میفهمن اون مقدار فهمی رو که در فرهنگ شیعه میفهمن در حضرت سنیا نمیفهمن در لفظ آیشه به عقص سنیا چیز خاصی رو میفهمن خطن شیعه این دو با خیلی فق میکن. پس اینطور نیست که ملول لحظی اون مقداری باشه که در لغت و به عنوان ورد نوشته شده. اون در حی قطتا توییه که شهکت شبیه تشوی که فروید داره در زمین آگاه و ناگاه میگه نسرات زمین آگاه می که ما اتفاق داریم از آگاه رو در اصولش هز تفسیی زمین ناقا نوش. اون مقداری که ما زمین آگاه داره نسرات زمین نا آگاه کرد. در شخصیت ما هست در زمیر ما هست وجدان ما هست عنوان ترصبات فکری و تاریخی نصفتش نسبت مثل اون مقداری از کوه یخ انسان در غریان میبینه این معروفه برای کشتی وقتی کوه یخ دیدن خیلی چندین کلومت بهمونده نزدیک نمیشن شبا شبا اون مقداری که بیرون آمده این ده در درصده نه در درصدش توی دریا هست یعنی اون قسمتی که آمازه بیرون خیلی کنه، بیشترین قسمت اونو قسمت محلی فرق یه شخصیت انسان هم همون سوره اون مقداری که ما آگاهیم بشن ده درستازه نبت درستازه اون درستازه ناگاهیم این بخشی که اونجا مثال داده توی مداریل ارفی هم همینه خود دقیق بکنیم تو مداریل ارفی اون مقداری که شما از لغت میفهمیم یک مقداره اون مقداری که از کلام خیلی آوازه، آدمان ده بگفم تو یک روز داره این کلمه رو تمرسل و حالا آ losses هدیه اینه ولش می‌کنه. همون چیکار کردند؟ تمرسل 50 اما می‌فهمد یه کلمه واضح ممکنه 700 معنا داره. آلا من نسبت یک دنیا گفتم که نسبتی یک به 700 شدن. لکان تمرسل و حالا آ losses این اون قابلیتیه که کلام داره. این مقدمه روشن شد پس ببینید ما یه چیزی رو در کلام میهیم به حسب لغت یک معنی خاصی برش میکنیم اما در فهم عرفی بالاتر از اون معنی است البته گایوگا اضافی بر اون ارتکازات عرف آم ارتکازات عرف خاص هم توش میانه مثلا یه مسئلهی در میان اهل سنت مفرق بوده و محل کلامشون در یه شن معینی بوده فلسانی و از اهل بیت علیهم السلام روایت میا تو هم مسئله و عام اینا مین ه تو عام معنا نکنی چون اون شعن مسئله خاص بوده باد خاص معنا بکن مثلا عام معنا نداره معنا بکنی ولو چرا چون یک عرفی منعقد شده طبق اون عرف اامه علیهم السلام صحبت فرمودن اون عرف فقعا پس ما یک عرف عام داریم یک عرف خاص داریم ما در اصول بیشتر اون رو او آن رو تحلیل میکنیم در فقه بیشتر اون عرف خاص رو تحلیل میکنیم یعنی وقتی میرسیم به وقت مبلو یعنیم معنا tactile معنا این رواID این بیشتر بیریم روی او فه خاص یعنی او فقه اما اینجایی در اصول صحبت می بیشتر روی او فه صحبت می کنیم ولذا این دوتا رو با هم عرف همده رو با عرف خاص. پس مرحب نایی ایشون می که ممکن است یا ممکن است یا ذکر اوف به آیت مبارکه این باب ذکر خاص لتنبیه و لذا ایشون این طوری فتکون و دلال رسول آیه علاقهارمت ایزا شدید مطمئن ایزا شدید رو بشه من المدالیل التضامیت لفظیه المدلول التضامی لفظی به خلاف اکرم خدامل علماء اما اکره خود دانمال علماء از باب دلالت عقلید به خاطر اولوی هست آنکه این نقطه که عرف کنند این لطیفه در کلمه هست که توضیح نهزن این توضیحش من خدمتونه عرف کردم ببینیش شما ما یکی لا داریم که حرف داره مخلوم خاصی در یک طبول داریم که فعل است و حیط ما این داره و معنی خاصی هم ماده داره و حیطش شده. لحما لام حرف داره که باش همون لام میمونه هما هم زمیره داره معنی معیم افت هم که بازه خب این کلمه مفردات شیعه بازه هست هیچ جایه ابحام ندام مرمون داری این فرمون مختلف این رو رویه افت از لاتقل لحما اوفن، همین محدوده لغوی رو نده فرمه که افت افت اصلا از این کلام میره از یهشون نکن این افت شده. این یک فهم عرفی یه فهم عرفی رب که هم به مدالیده عقلی نه چون عقل میگه نه اصلا رب به عقل نداره وقتی که با آد شما مثلا نمباد میسار نسبت به مثلا مثلا خانه نمباد میسار سر ساعت دوازده باش خوبی این یعنی تأکیده به اهمیت به, بو... به مراقبتون از مورد اینه. خوب حالا وقتی نصف ساعت اینقدر دلیل باشه، نسبت به با امور دیگه مثل اون خرگوش خانه، مثل اون پوشاچو خانه، آب و به اولاد و لذت داره. این فهم یک فهمی نیست که عادل لذت می‌کنه. چون آیا اعتقادشون اینه که ما مثلا یه مخصوص لذت زیگری، یه مخصوص عادلی. من با مناسبم. اگر آقایان علماء اهل فصا این مخصوص لذت اما اگه به اللهم لعن بني اومیتا قاطبتن یعنی هر کسی که نجا نسلن و نجادن برمی به بنی عمیه خب اگه یک کسی از بنی اومیت مؤمن بود به حکم عقل که انسان و مؤمن لعن نمیشه که این اللهم لعن بنی اومیتا قاطبتن الا المؤمن به حکم عقل خارجی در لفظ نمیده اما عقل اینو میفهمه انسان و مؤمن که لعن نمیشه این هم جمسونه بردم کنی بود نیست واقعا به زدارت چه مومن که وجدان نبوشه از که از درمومنشه کسی نیست خلاف وجدان که اگه کسی حملن نشد اگه شد شما خواهیم که نیست نمیشه از برد و زنا که بردتر از بزرگان هم بشه از بشه فرمشون سیرن بشه یه وقتی من آمان دگاه میکردم در این تاریخ بابهای پاپهای مسیحی از اون اولشون تو حالا دیدم هفته تا اشتار دیدم تو زهن خودشون نمیشون اینا بلد و زنا بود بروشه پاکی خودشون شهر حالشون اینا بلد و زنا که با اینکه که علم هم بگم که حالا این ما داریم بیگم خب بحث این بحث شما تو زمینه عدل بود، عدل که آدم نمیشه. خب نه اینکه خدا ریزانه عادل که میشه اما خب آثار خاصه به جو امام جان نمیشه، معنی نمیشه لا. چه جو ما خان تقض رفتن هر ثناوری مرحوم نایینی روشن شد می‌خوام بگم مرحوم نایینی به طور کلی من هر کس اون خدمتینه انصافا در میان علما یه <تصفح> امتیاز ایشان، در به خاطر اصولی ایشان که خودش رو تقیات و هر یک وقتی سودی شکی واقعا قابل استفاده است حقا یوا و مردسال بزرگوار مردسال روح بادام است که خب مثلا یکی چیزی در اندر نچایید ساختن نچای تنگیوندلر اونسی واقع جدی میفته مثلا اونجا بینی که مثلا استبداد بینی از استبداد سیاسی بدتره خب خیلی حرفو تنگیینه که از دنیای روحانی در اندر نچایید ساده بشه که استبداد دینی هم این در استبداد سیاسی وقت اما این ماکان انصافا مرد مظمومونانی در این جزتی ها بود و از مزایای ایشان همیشه دونه من ارفی بودن ایشان به خلاف خیلی ده مای عزوغری میفرمانه از <تصف> ارف خارجه خدا همهشون رحمت کنه اما مرد انصافا خیلی ارفی هست اجازه من اجلی ده از با رو همه سال قدسال لاحنسا منتها و قبول که واقعا از بزرگان بودن و شوال خادمان بودن نشسته بودیم صحبت احلم علمای علم شیعیشون هسته نهبتن که میگن محققه هلی علما و افقه افقه افقه ازاهن همه چون پسفید سال فرسه زار هزار و و نبد و بود که الان سال قبل بله، اما آلا من قبلش هم صحبت بود مردم بوجودوش هم که به نظرمان احلم و علمای شیعه طول تاریخ نائمی هستی که ایشون رو احلم و علمای از طبر اول تا زمانه رضان الله تا برده حالا از این حالا جاهبه تعریف احلمی ها اما انصافا، مرموهای نائمی خیلی غرفیه، خیلی نزدیکی به خیلی انصافا، با اون های فکری که ایشون داره، این وقتی که ببینین اکشن خود دامل العلماء بالا تعالی ما اوشن فهم من ببینید ما بدیشو کردن برای همین نکته. چون این خیلی من اعتقاد دارم که در ان در مقدمات آیند 10 سال آینده کاری کار انجام می‌دم در فقه و اصول ورفی بودن رو از خودتون جدا نکنی خیلی ذهن ارفی خودتون رو تربیت کنید. چون این آیه و سنت رسول الله علیه وسلم یه حضرت الله علیه السلام که حضور محرم اجازه همدانی قدس الله سره که واقعا عجوبه است مگر وقتی فرصتی میشه که شخص اینها صحبتی بشه بله آیا حضور به نظر من محرم اجازه چون یک بحث در ان سراس الله یک مطلب عقلی میرسه مثل شیخ الرئیس اینطور و وقتی یک مطلب اورش میرسه مثل عرب بلدی بیاونیدشید هیچ مطلب مثل اون که که میکنه در اونجا اونطور و این مطلب درست یا حالا راست همه هست من واقعا این فیاضا تحجیبی داره این صاف هم یختبت رو مثله انشاءالله فیلمت از رو متح نکن اولایی که ما خواهن این نقطه مرگون من این تحلیل زبان شنافتیش از بود در حقیقت مرگون نایمی من بگه که لا ته الله ما این ده درصدش یا تقاله همه اون نورد درصدش ن حدیه بشین بکرم بگرده بشین در اینقدر مخواد اینو بگیم اما اگه اکیان خدام علمان همه شمونه اکیان خدامان هر داره که علمان رو تجربه اولا این دوتا رو مخواد ایشون فرق بگذاره یکی رو گذاشته مضلول الفضامی لفظیر یه کلی گذشته مدلول التزامی عقلی این ایشان خیلی بده خوره خیلی مفیده یعنی مقروم کتاب جواهر در کتاب جواهر زیاد داره مثلا از یک روایت این معنی خاصی رو میتونه بعد میشهی تی که آشنا با کلمات باشه و با اعتیه فهم کلمات این معنی رو میتونه این یک جرافت یک راسته این اصل مطلب دوسته من باید روگرل مثال زیاد تحکیم مال رو تا این مخلب از اول تا آخر خوندیم به خاطر اینکه این, این کار روزه بسیار زیاد در برای شما داره خیلی بخش مفیدی زرفه و برای شناس بعد ایشان بعد از این مطلب، البته چیزی چیز دیگرم ایشون بعد فرمودن که یک من سوسال اللهم داریم سمه انهانا قسمن آخر در میستلوغ علیه ها بالمخم که منصورت الاله یه تودیهی دارن که چون من ارز کردم نیمون مطالبه تمام شد آنه میشنن خودشون مراجعه بکنن و جای بحث نباشید درد ایشون که خب درد که اینکه مفهوم موافق روشن شد فنقود اگر آن با مفهوم موافق تا آرست بده ایشون موافقه درد که اگر آن با مفهوم معارض تا آرست پیدا کرد همون جریاناتی که مثلا آی خویی تو مفهوم مخالف و تو مفهوم موافقا میارن به یک دفعه به که یک دفعه نصفتشون شما خصوصی من شد اون خصوصی مطلق پس بنابراین ایشون معتقدن که گاه و آدن نصفت اون حالا من برای اینکه آشنا بشه ذهن شما با این اصطلاحات ایشان و با خود مسئله همین مثالهای ایشان رو یک مروری میکنیم مثلا گفت اکتم خدام الالما محکومش اینه که اکتم الالما به با اولا دیگه این محکومش حالا میگه آمان گفت لا تو فیوم الفاسه لا گفت لا تو فیوم نسبت بین لاسوکم الفسا با مفهوم از خدام العلمان مخصوصه نمیده چون مفهوم میگه عالم رو اکرام بکن اون عام میگه فاسق رو اکرام نکن مهم کلام عالم فاسق نه خوددام علمان خود آلم یه دفعه خوددام علمان رو حساب میکنین اون یه برکه چون خوددام علمان نسبتش با لاسوکم اون هم مخصول منوشه دیگه فهم میکنه نه حالا یه دفعه نسبت رو حساب میکنی خب دردت نسبت رو حساب میکنی با مفهومش که اکرم ال عل علماء آیا اینجا اکرم ال عل رو مقدم میکنی یا لاتفرم الکستا رو مقدم میکنی اینجا نسبت بین مفهوم مخهوم محافظ با آن نسبت اون مخصول منوشه این مثال هایی که ایشون دارد خب اون خسوم مطلق هم همین مثال خود ایشان اگر گفت لا تقال لما اف شد به پدر مادر اف نگو از اون برم گفت هر کسی که مثلا از ساعت 5 تا ساعت هفت تو خونه آمد بیرونش بکن بیگه تو گوشه ایف فنز... بندس بقوله معروف و فایس فنز... بیرونش بکن یک کده ایفت بذار بیرونش بکن حالا در این ساعت پدرش آمد لا تقول لا false مفهومش این بود که خب پدر رو اذیت نکن دیگه یک امنی هم داشت که هر کسی در این سوال آمد با مثلا با بهانه دربار صد به مثلا او رو با له صد با او رو از خونه بیرون بکن تا رو میکنه مفهوم لا تا ما افسن با این عموم كل من داخل داره که ساعت فلان یه اثرشو مثلا مفهومه ایش اینه که اگر پدرش رو دکنه بیرون نفهم حالا پس در اون ساعت پدر آمد که اون آم هر چیزی در این رو بیرون بگن و پدرش کتر با خودش رو بکنه یا اون مفهوم مقدمه لا تقال لهم آفشن. اون معناش اینه که پدر خارج رو بیوان رو کدن نسبتش در اینکه اون خصوص اونجا با هستی که آمد من خصوص پدر ایشون مثال تا آرز رو این گریب روشن شد پس یک تا شد بین محکوم و محافظ با آم بعد ایشون یک بحثی داره ولیکن در که من از این وحس و دیروز هم در شد به عبارت مرحوم استاد گفتیم و اگه یادم واردتون باشه همونجا عرض کردیم که غیر از استاد هم حسوم دیگه دارن من از چه همیشه در بحث‌های علمی اون رمزگشایی و رازگشایی رمز رمز مهمه یعنی اونی که از همه اهمیتش بیشتر اون نقطه سنجی و اون ظرافت فنیه بحث خب شما ممکن است در اینجا اینو ببینید ببینید چون موافقه یا وارد ValueError و من عقلی این مقدم میشه مفهوم موافقه مولد گو هر کسی آمد در این ساعت اونو با کتک میون بکن. الا پدر, پدر از کجا از این مفهوم موافقه ممکن است این اداره بکنید مهم اینه که رمز این کار چیه از چه ای وارد این بحث دیروز دیروز ارد کردیم مرمون اصطا نقطهی ورود به بحث رو از این را که اصولا تا آراض با منطوقه نه با مطمون اگر تا با منطوق شد اون دقیق بکنید اگر تا آرز با منطوب شد منطوب تجایی بست نداره پس و منطوب مقدم شد اون وقت خواهی نخواهی مفهوم هم به تبع او مقدم خواهد شد مثلا اگر در اکلم خود آمد علما اون اکلم خود آمد بست خواهد اما. اگر لا تغاله همان بعد از اون وقت هر کسی که آمد خب این میخواهد بگه هر کسی که آمد و اون شخص که در مادر شما باشه آه. پس آیه منطوب این است که به پدر مادر مطلقا افنه بود معنای اون عام هم است که پدر مادر کتک میزن بیرونشون از این بیرون با همونی لذا این مثالی که که هر از ساعت مقرد برمسالن بیادیم بازن میشه آموخواست که اگه مثال این طور بوده اگه پدر ساعت نو آمد که مفهومش بشه نه دیگه این به خصوص این عنوان پدر خارجه اونو عام می خواست خب هر کسی از ساعت نو خوالی هم و اف می نه با مفهومش نه با منطور شما با منطور گرش مفهومش. مفهومش این لا داره هر, کس هر کسی نه هر کسی که ساعت آمد میشه. نه تخصیص میخورد بگیه الا بدون تخصیص هست نه لا تقل نسبت با لا ما افل نگیریم نسبت با لا تقل والده این با اون بگیریم نسبت با لا والدین. والده این اون رو با اذیت و آزاگی رو بخونه اون نمیسته با هم بگیریم نسبت با شما خطون من منطلقه شما با منطق گرفتیم من نمی‌دونم میگم که در مفهوم موافق ممکن نیست که مفهوم معارضه با آن باشه بدونی که منطوب در این زاویه ورودی ایشان در بحث چیه مثلا در همینجا نعل کردن از بعضی اصولیا چون دلالت عقیلیه همیشه ذات احلی بر لزوم مقدمه یعنی اون از اون زاویه وارد شد مفهوم دال یعنی از ذات چون ایشون میگه که اگر مفهوم موافق باشه و منظور صیغه دلالت بیع علی المفهوم معادا که که اوقل ان یکون منطوب منط میشه از ن باشه و معارض نباشه با آن و محکوم باشه. فضاشون که تا آار در مکوم معفق نمماق ابتععا بین منطوق و عام تز حقیقت بین منطوق عام و یک بر وقو بین محکوم و عام این تی تا آارز مکوم با عام تی مثلا حالا یکی مثال می زد اکره خدام العلمان این از درکه لا سکم الفصا این در حقیقت اکی بین خود اکرام خدام العلمان بین خورمت اکرام فاسق هم هست نسوه که موضوع می روش اکره خدام العلمان اصلا تعارض بین معام با خود منطوب هم هست و به طبع این تا آرز تا آرز هست بین مفهوم و بین من آم مراد از مفهوم اکرام خود علمان اون وقت از اینجا این, این نقطه ای که من دروز ارز کردم یواشه هاش تو زهن سون بارد بیاد این نقطه که زهن باشه یه تشویحی دیروز آورده از اینجا یواشه هاش اون تشویحی که بحث ما نبود اون تشویح گفتم عده از قدما چه شیخه تو صدوق در از ما صدوق میکنه ما این روایت تقدیم کردیم چون معلله یه <تصفح> مبناهی داشتن بعضا از قدمای ما که اگر دو تا حدیث معارض باشن یک حدیث فقط حکم داره یک حدیث علت هم داره اینا بودن حدیث معلل مقدم حالا چون علت مثلا قویتر عقلی علت عقلیه آلاه عقلی. یکی از نکاتی که ظاهرا در اونجا بود که حدیث محلن در حقیقت دو بار حقیقت رو گفته حدیث محلن یک بار اگر مثلا گفت که لا مثلا از اون محلن گفت که مثلا انگور بخور لعنه هو هلو, هلو شیرین انگور خب این ها این لعنه هو که دو مرتبه گفته پس انگور نمیشه نمی‌خورد انگوری که ترش نمی‌خورد با این که گفت لا تاکل هامه اون لا تاکل هامه یعنی به مزارش اگر انگور هیچ لا مثلا انار رو مثلا یک نوع از انگور رو مثلا بعدم گفت که کل انار به نهو گو این که یک نوع انار رو گفت نه از اون طرفم گفت بخور این معلل مقدمه چرا چون معلل همیشه که انما ایلت خود رو حکم آمده ایلت دو مرتبه آمده اما اگر معلل نباشه حکم این مرتبه آمده ببینید اینا میگن اگر مفهوم داشت که انما دو مرتبه آمده نگفت لاچو کن کنیم فسا از اون بگفت اکم خدام از علمه این خدام از علمه این نسبت شب فسا خون باید یه خود و علما هم به طریقه با اولا باید اکرام میشونه خادمش اکرام شد، به رو طریقه اولا پس که ام این نسبت به این قسمت دو مرتبه آمده اما نسبت به لاسوکنون فسار یک مرتبه اصلا شبیه اون ولذا اگر مفهوم این بود ولی نسبت استاد امون خود رو مفهوم مقدر نه. بله و که مثل قوله سالا لا اف ما قولیه ای برم کل اهده ای کل اهده مثال عجیب شام بیدید ما یکنی بهترش خوب دید میکنم همار کتک روزن خیلی حقالایی گفته تو کوچه هدید رو رو بله مثالی مثال شده ما بگه یکیم افیتر بشه گفتیم مثلا اگه کسی در خانه من اما فلان ها خب فه این نقوله و بو اغرب کلا اهدن یا دلو بل اولویه جواز اف میگه حالا که آمد بفت کتک بزن خب طبعا به طریق اولا عف جایزه وقت اون منطوع با این مفهوم معارضه فه این آرزها داره ماله و من المفهوم آم با مفهومش با قولی هی لاتباللهما اف و به طبع اون معارضه میشه با مفهوم قولی هی ما افه مثال شمی که من عرض کردم این مثال من واضح از مثال ایشانه گفت ساعت هفت تا ده تو خونه آمد بزن این دوزه مثلا ساعت سه مثلا دوازه تا پنج سو کسی تو با کتک بروشی این که حالا چه آمد نه که گفت در این ساعت تدرش آمد آنیا آمو واقع بکنه گفت که در ساعت به کتکش بزن یا محفوم لا تقال لها ما افرم از افر جایز نروشه کسید به طریق اولا مثال ها انشاءالله روشن شد براتون این طرح مرهوم نایین بعد مرهوم نایین می فرماد حالا که تا آراد شد چار از امون خصوص مطلقه و اخرا امون خصوص منوک اگر امون خصوص مطلقه شد خب معلوم هم به آن بر فارس میشه اون که به بحث مده اون که به بحث نده. و اما اگر مح در عموم مطلق ایشون هم به آن برخواد کردم فقط در عموم مطلق باز یه نقطه لکیفی نا واقعا منوش واقعا نشن ساعتها روی مسئله فکر کردم رحمت الله یه نقطه لکیفی که رو معلوم نایانی داره من از بیشتر با خاطر نکات بحث ایشان رو خوندم ایشان میگه که وقتی که ما آمدیم منطوق رو با آم نگاه کردیم گاهی اوقات منطور و عام اون ام خصوص اما تو مفهوم که میرسه، اون خصوص میشه. این نماد لطایف کاری ایشان یه گاه گاهی نسبت بین منطور با آم، نسبت اون ام خصوص اما مفهومش که بگیریم، اون خصوص میشه. مثال میزنه مثلا اگه بلا سکم فساغ فساغ رو اکرام ده بعد گفت اکره فساغ خدامی علمان اون نسبت فساغ خدامی و لا سکم فساغ خدامی و فساغ فسا و اون معلوم خدام خدامی و علمان خارجش این دیبن. حالا مفهومش چیه؟ چون مفهومش این بود که اگر عالم باشه به طریق اولا اکرامش موجوده خب قطع کنیم اگر عالم باشه به طریق اولا اکرامش نیم پس توش اکمال علما مفهوم شه نسبت وین این مفهوم که اکمال علماست بالا لاساکمال فستاق اون خصوم این رجعه در منطوق نسبت شما اون خصوم بود در مفهوم اون خصوم اینجا چیارو بکنیم در آلم فاصل به مفهوم عقص بکنیم بگیم اکرامش واجبه یا در آلم فاصل به آم عقص بکنیم بگیم واجب نیست این بحث به عنوان یه تا اینجا بحث به فرزا و این نقطه ایلتیفش این بود که بکنه آروم فکر بکنن برای فکر مجال فکر زیاده قدر در جواب نایی نبینیم خدا آروم اینشاده فکری در اصلاح قضیه بکنن